دو، نظریه بازی ها و مثال های آن در خلقیات ما بر اساس نظریه بازی ها، صرف نظر از محدودیت هایی که این چارچوب نظری دارد تا حدودی می خلقیات و روحیات ایرانی را بررسی کرد چرا گاه اولین بازی که به طور مثال میان رانندگی تاکسی و مسافر اتفاق می درگیری و مشاجره است؟ یا چرا در صف نانوایی مشاجره رخ می پشت این بازی های منطقی چه چیزی وجود دارد؟ چرا این بازی ها رواج میابند؟ چه نوع آموزشها، قوانین، ترتیبات سیستمی و مدیریتی و چه نوع مداخلات عاملان انسانی و فعالیت های متفکران، معلمان، مربیان و فرهنگوران لازم است تا منطق و نوع بازی های اجتماعی ایرانیان ارتقا پیدا کند؟ چه نوع مداخلاتی لازم است و چه اصلاحات عمیق نهادی ضرورت دارد بازی های انسانی از کجا سرچشمه می گیرند تئوری بازی یکی از نظریات پایه برای تبیین و توضیح رفتارهای بشری است بازی فعالیتی است میان دو یا چند نفر که در آن طرفهای بازی راهبردهایی دارند و در راستای آن راهبردها انتخاب هایی می کنند تصمیماتی می گیرند و رفتارهایی بروز می دهند. این انتخاب ها به یک لحاظ و حداقل بر مبنای منطق خاص انتخاب کنندگان انتخاب اقلانی محسوب می شوند و مشمول نوعی اقلانیت هستند. قواعدی واقعی و نن درست بر این انتخاب ها حاکم است و مطلوبیت از طریق آنها دنبال می شود و یا از فقدان نامطلوبیت هایی احتراز می شود. اقلانیت بازی اما از درست بودن است طرفهای بازی اقلانیتی دارند که بر اساس آن رفتار میکنند و یک نوع قواعد واقعی بر انتخابهایشان حاکم است قواعد واقعی اما از قواعد درست است منظورمان این است که این قواعد واقعیت دارند و طرفهای بازی بر اساس آن قواعد بازی میکنند و برای آنها منطقی قائلند بازی برکنش و واکنش طرفهای بازی مبتنی است. موضوع مهم در بازی این است که انتخابهای اقلانی طرفهای بازی با یکدیگر نوعی ارتباط متقابل است. به همین دلیل موقعیت بازی نوعی موقعیت استراتژیک محسوب می شود. هر کس در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد و با دیگری بر اساس راهبردی که دارد رفتار می کند و رفتارش از رفتار طرف دیگر یا طرف دیگر بازی متأثر است. نظریه بازی در واقع در صدد فهم رفتارها در موقعیت استراتژیک است. هرچند نظریه بازی ها از ریاضیات کاربردی است در سایر حوزهها مانند اقتصاد علوم سیاسی جامعه شناسی، روان اخلاق و غیره نیز به آن استناد می‌شود. جان و نویمان، ریاضیدان مجارستانی این نظریه را در سال 1928 مطرح کرد. نویمان رفتارهای سیاسی را در سطح کلان جهان در دوره جنگ سرد میان دو کشور ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در قالب بازی با مجموعه صفر مدلسازی سازی کرد. وقتی نویمن و منگشترن اقتصاددان اتریشی کتاب تئوری بازی ها و رفتار اقتصادی را در سال 1944 منتشر کردند، نظریه بازی ها جایگاه وسیعی در علوم اقتصادی پیدا کرد و سپس به سایر حوزه تسری یافت. در این نظریه از انواع بازی بحث می شود، این که طرف های بازی بر اساس چه منطق و راه رفتار کنند و کدام نوع بازی را در پیش گیرند و آن را چگونه پیش برند همه و همه تابعی از یک سلسله قواعد واقعی مانند همکاری، خودخواهی، انصاف و غیره است. یک نمونه قاعده رقابت است که یک نوع بازی به وجود می آورد. نمونه دیگر قاعده شراکتی است که نوعی بازی دیگر به وجود می آورد. های دیگر بازی انصاف یا بازی خودخواهی است. قواعد بازی می‌تواند اخلاقی یا غیر اخلاقی باشد. مثلا بازی زن و شوهر در زندگی خانوادگی ممکن است با قواعد قهر و مشاجره صورت گیرد یا با قواعد گفتگو و تفاهم باشد. بازی گروه ها می‌تواند با قواعد رقابتی یا گارتی انجام پذیرد. اما خود قواعدی که بازی را به وجود می‌آورد از کجا نشأت می‌گیرد؟ این قواعد به نوبه خود از یک سو تحت تأثیر زمینه های تاریخ و جامعه، وضعیت نهادی، ساختارها و فرهنگ است و از سوی دیگر تحت تأثیر روانشناسی بازیکنان قرار دارد. قواعد به درجات زیادی از طریق نوعی یادگیری اجتماعی آموخته می و البته از آموزش و ارتباطات نیز مداخلات سیستمی مثل وضع قوانین و ترتیبات هم متأثرند. بر حسب بحثی که در این کتاب دنبال می‌کنیم، این پرسش مطرح است که چگونه در جای قاعده دروغ گفتن و بازی دروغ و دقل به جای بازی صداقت، راستگویی و درستکاری رایج می‌شود. بازی دروغ خود از منطقی پیروی می‌کند که حقیقت ندارد، ولی واقعیت دارد. دلیل ندارد، ولی علت دارد. این منطق از زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خاصی نشأت می‌گیرد. همینطور است قواعد دیگری که در های اجتماعی به کار می‌روند مانند قاعده پرخاش در مقایسه با همکاری یا خودخواهی در مقایسه با انصاف قواعد بازی در واقع قواعد آموخته شده ی رفتار هستند که از طریق یادگیری اجتماعی و ریشههای زمینه‌ای فرهنگی نهادی و تاریخی محقق می‌شوند البته چنان که گفتیم آموزش می‌تواند قواعد را تحت تأثیر قرار دهد مداخلات سیستمی میتواند قواعد را توسعه دهد و دوشاره تغییر کند و یا ارتقا دهد و بهبود بخشد. انواع بازی دستبندی های مختلفی شده که چند نمونه آن در ادامه ذکر میشود. الف، بازی متقارن بازی نامتقارن در بازی های متقارن انواع راهبرد مستقل از اینکه یکی از طرف های بازی آن را انتخاب کند نتایج قابل پیش و قیاسپذیری دارد. اما در بازی های نامتقارن، یک راهبرد مشابه بسته به آنچه کدام طرف آن را انتخاب کند نتایج متفاوتی به بار میآورد. ب. بازی با مجموعه صفر بازی با مجموعه غیر صفر. در بازی های با مجموعه صفر برنده بازنده وجود دارد اما در بازیهای با مجموعه غیر صفر راهبردهایی امکان پذیر است که برای تمام طرف های بازی مطلوب باشد به عبارت دیگر این بازی ها از نوع برنده برنده هستند بازی های برنده برنده برخلاف بازی های باخت یا بازی های باخت باخت منطق و قوائدی دارند که تمام طرفهای بازی می توانند در نقطه تعادل مطلوب خود را به شکل میانگینی به دست آورند. یعنی یک نقطه تعادل وجود دارد که در آن همه بازیگرها منافع خود را به طور متوسط بهینه می کنند. په بازی پیوسته، ناپیوسته بحث به اینکه روند بازی تا چه از عنصر تصادف و آشوب بدور و به صورت ساده و خطی قابل پیش بینی باشد یا نباشد دستبندی می شود و به همین صورت دستبندی های دیگری مانند بازی با اطلاعات کامل و بازی با اطلاعات ناقص، بازی تعاونی و غیر تعاونی، بازی کارآمد و ناکارامد و مانند آن وجود دارد. بر این اساس این پرسش مطرح است که در ایران با زمینه‌ها و تاریخ و وضعیت نهادی و فرهنگی که دارد چه نوع بازیهایی بیشتر توانسته توسعه پیدا کند، باب شود و رواج یابد. مردم با چه بازیهایی توانستند مسئله های خود را حل کنند؟ مثلا بازی با مجموعه صفر بیشتر گرفته یا بازیها با مجموعه غیر صفر؟ بازی های برنده برنده بیشتر جواب داده یا بازیهای برنده بازنده؟ بازی ها نوعاً پیوسته بوده یا ناپیوسته؟ بازی با اطلاعات کامل بوده یا ناقص؟ برای تعمل در این سوالات نمونه از بازی ها را مرور می کنیم. بازی معمای زندانی بازی معمای زندانی نمونه از بازی هاست. دو نفر متهم در زندان هستند و از آنها جداگانه بازپرسی می شود. هیچ یک اطلاعی از اظهارات دیگری ندارد. اما میدانند چنانچه هر دو سکوت کنند، حد اکثر کیفری که میشوند یک سال زندان است. چنانچه یک طرف شواهدی علیه طرف دیگر ارائه کند، آزاد خواهد شد و در این صورت دیگری به پنج سال حبس محکوم خواهد شد. اما اگر هر دو یکدیگر را لو دهند هر دو سه سال زندان خواهند گذراند. اینکه هم من و هم او سکوت کنیم، مستلزم اعتماد متقابل است. این طرز بازی تنها با قاعده اعتماد متقابل صورت می گیرد. اما اینکه هم من و هم او یکدیگر را لو دهیم نتیجه بی است و خیانت پایاپای روی می دهد. در اینجا شاهد منطق متفاوتی از بازی هستیم و آن منطق و قاعده بی است اگر من لو بدهم اما او سکوت کند بر حسب منطق عمومی اخلاقی من به او خیانت کرده اما ممکن است من یا کسانی این را منطق زرنگی بدانیم در چنین حالتی او نیز بنا به یک منطق عمومی اخلاقی شرافت به خرج داده است همچنین ممکن است من و یا کسان دیگر این کار او را از نوع حماقت بشماریم از این چهار سناریو دومی آشکارا زیانبار و غیر اخلاقی است و سومی و چهارمی ناکارآمد هستند این چه زرنگی است که فاعل آن در معرض نارو زدن به دیگران و تضییع حقوق آنها و احیانا خیانت قرار میگیرد و چه دشوار است که شرافت در مزان حماقت واقع می شود بسیاری از آموزه‌های سنتی تعلیم و تربیت ما مفهومی از گذشت و ایثار به دست می‌دهند که مستلزم انکار نفس و بیگانه با واقعیت‌های طبیعت بشری و سرشت مناسبات اجتماعی است در واکنش به آن نیز در بخشی دیگر از نظام آموزشی و تربیتی خانواده‌های ما کودکان زرنگ نسل فردا به گونه‌ای تربیت می‌شوند که به اصطلاح گیج نباشند و بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند قواعد بازی نسل فردا از این ارزش متعارض اخلاقی آشفته خواهد شد. تعمل در این بازی در که ما را از اخلاق اجتماعی و سیاسی بهبود میبخشد. در مقیاس اجتماعی به خصوص در جوامع پیچیده امروزی انتظار این درجه از گذشت و شرافت از مردم اخلاقی نخبه گرایانه و اوتوپیاییست و برای اکثر مردم متوسط الحال که به زندگی با همه محدودیت های بشری خیش، آری گفته‌اند واقع بینانه نیست پس تنها سناریویی که میماند سناریوی نخست است که به اعتماد متقابل نیاز دارد بازی اعتماد و بازی اخلاقی خلقیات اجتماعی در واقع بازی های زندگی و روابط روزمره ماست و برای اینکه بازیهایی کارآمد سالم و اخلاقی شوند به فضای اعتماد و شفافیت و نوعی فرهنگ راقیه نیاز دارند که به نوبه خود مستلزم ساختارهای توسعه یافته ای هستند اعتماد در مقیاس اجتماعی به معنای محدود اعتماد چهره به چهره گه میان دو یا چند شخص نیست بلکه اعتماد نهادینه شده است و تنها در ساختارهای باز شفاف و دارای نهادهای جا جاافتاده مدنی و محیط حقوقی توسعه یافته رشد می کند وقتی چنین ساختاری نباشد، کار به واگرایی و سوء تفاهم کشد و یا به تعارف تقلیل می‌یابد. در مثال بالا، ساختار زندان افراد را با بازی پیچیدهای درگیر می‌کند. بازی اعتماد آنها را دشوار می‌کند و اقلانیتشان را بلبه‌ی بل غیر اخلاقی شدن قرار می‌دهد. در یک ساختار بهتر، لزومی ندارد بازی اخلاقی این دو دوست تا این حد پیچیده شود. حال این بحث مطرح می‌شود که در بازی های ایرانی چقدر زمینه برای قاعده اعتماد متقابل مساعد است و چقدر سرمایه های اجتماعی در ایران وجود دارد؟ چقدر مسئله بی و دشواری بازی اعتماد در ایران وجود دارد؟ فراموش نکنیم که بازی اعتماد در جامعه پیچیده امروزی به سادگی جوامع ساده قدیمی نیست جوامع کنونی با گذشته تفاوتهای اساسی پیدا کردند اما جامعه ما از برخی جهات هنوز ساختهای قدیمی دارد درکیم ساخت مکانیکی جوامع ساده را با ساخت ارگانیک جوامع بزرگ پیچیده مقایسه کرده است به یک جهت میتوان گفت جامعه مدرن از حالت ارگانیک نیز عبور کرده و سیستمی باز و تابعی از قراردادهای اجتماعی و پویاست اعتماد در چنین شرایطی با اعتماد چهره به چهره افراد در یک جامعه سنتی مقیاسی متفاوت دارد و بیشتر از طریق ساز و نهادین و نمادین فراهم می شود. آنچه در جوامع ساده اعتماد ساز بود، ممکن است در جوامع پیچیده کارایی نداشته باشد. اعتماد در واقع نوعی تحول مفهومی پیدا کرده. بیشتر مفاهیم دیگر نیز چنین است. غیرت در جامعه قدیم آثار، ارزش و فضیلتی داشت. البته امروز هم میتواند در برخی معانی خود همچنان با ارزش باشد، اما در بعضی معانی سنتی آن نه تنها ممکن است در جامعه مدرن فضیلت نباشد، بلکه حتی شاید به صورت غیر اخلاقی ترین رفتارها و رزیلتها ظاهر شود و مثلا افراد و گروه ها را به خشونت و دیگر ناپذیری سوق دهد. و یا اخلاقیات پدر سالاری یا مرد سالاری را منعکس کند و با حق و حقوق و آزادی های افراد در سبک زندگی مقایرت داشته باشد اخلاق در نظب های گسترده صنعتی و مابعد صنعتی صورتبندی متفاوتی از اخلاق در نظب های ساده قدیمی و اخلاق قبیلی دارد بنیان جامعه بزرگ و پیچیده بیش از این که بر مدار کنش و واکنش های چهره به چهره و فیزیکی باشد مبتنی بر رعایت ترتیبات سالم نهادین است. اخلاق نیز بیش از اینکه که متشکل از آثار و تأثیرات مستقیم عاطفی باشد، به صورت غیرمستقیم و از طریق قواعد انتظایی تعقیب و تأمین می شود. گویا هنوز به اخلاقی شدن زندگی اجتماعی از دیدگاه های ساده قبیل ای می نگریم. از خانه تا محل کار این همه زنان و مردان و بچه های نگونبخت خیابانی و این همه نابرابری و خلاف حق و حقوق میبینیم و چه بسا صورتمندی قدیمی از اخلاق ایجاب کند به جای رفتن به سر کار و عمل به وظائف ای و تولید و تحقیق و تدریس و انجام خدمات و فعالیت های سیستماتیک در عرصه مدنی و اجتماعی همچنان با ترحم و انفعال به مورد به مورد این بینوایان رسیدگی کنیم، اما امروزه صورتبندی جدید اخلاقی از ما ارزشها و رفتارهای متعالیتری را برای مواجهه با این بدبختی ها طلب می کند. شکوه اخلاقی جامعه جدید آنجاست که به کسانی نیکی میکن که آنها را نمی بینید و آنها هم شما را نمی بینند و ریا و تظاهر و بوغ و چرنا حداقل از این جهت منتفی است. فضائل اخلاقی انتظایی تر، نامحسوس تر و غیر فیزیکی تر شدند. همین که کسی علاقه سیاسی و قرائز بشری خود مانند علاقه به انتخاب شدن، از سوی مردم سمتی را با رویکرد درونی تکثیر خیر و تقلیل شر در زندگی سرشار می کند و صادقانه قراردادها پیمانها و میساخ اجتماعی را رعایت می کند، دروغ نمی گوید. از طریق نفوذ در احساسات مردم، عوام فریبی نمی کند، به وعده های خود پایبند میماند حقوق افراد و گروه ها را زیر پانه می و به اصلاح جامعه مدد می رساند، همان اخلاق مداری است. در اینجا دیگر جایی برای انواع تقدس وجود ندارد. های غریزی بشری از طریق تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن در جامعه جدید با ترتیبات پیچیدهتری ظاهر شده است و این رفتارها وقتی با نوامیس، قوانین و قراردادهای عادلانه، عرف سالم و نیات معطوف به خیر با خیر عموم همراه می‌شود، معنای اخلاقی پیدا می کند. بازی ترسوها از زرنگی ناکارامد تا همکاری کارامد نمونه دیگر بازی ترسوهاست یک مثال از این بازی در مورد دو راننده است که هر یک در اتومبیلی از دو سوی یک پل میگذرند به طوری که فقط یک اتومبیل میتواند از روی پل عبور کند اگر هر دو توقف کنند نوعی همکاری ناکارآمد است چنانچه هر دو حرکت کنند به تنش و تعارض منافع می‌انجامد اگر یکی حرکت کند و دیگری توقف و یا بالعکس یک طرف گذشت کرده و طرف دیگر زرنگی این نمونه ای از بازی مجموع صفر است رقابت های مخرب تسلیحاتی و ای در سیاست بین الملل نمونه ای از این نوبازی است هر یک از قدرت ها می گوید اگر من خل اصلاح کنم دیگری نخواهد کرد و برای من مشکل ایجاد خواهد شد من کار خود را متوقف خواهم کرد ولی او حرکت خواهد کرد در این حوزه بحث های جدی وجود دارد در این بازی با چند گزینه منفی مواجه هستیم: زرنگی ناکارامد، گذشت ناکارآمد، تنش و تعارض و همکاری ناکارامد. تنها یک گزینه مثبت وجود دارد و آن هنگامی است که راهی رضایت بخش برای همکاری کارآمد و پایدار تدارک ببینیم. اما چرا گزینه گذشت ناکارامد به رقم ظاهر اخلاقیش منفی است؟ در مقیاس اجتماعی و زمانی کلان بازی گذشت ناکار است. زیرا اولاً بازی به روانشناسی بازی کنان مکول شده که امریک غیر قابل است. ثانیا امکان دارد شرایط ای باشد که توقف برای کسی پرهزینه باشد و نتواند گذشت کند. مثلا ممکن است مخاطراتی او را به عبور سریع از پل وادارد و یا زمان برایش کالای کمیابی باشد. از سوی دیگر ممکن است تکرار بازی او را به این نتیجه برساند که چرا دیگران توقف نمی کنند و اوست که باید همیشه برای دیگران بیستند. گذشته از این وقتی تعداد بازیگر زیادتر می شود و ماشین های دیگری نیز از جلو و پشت می رسند طبق مشاهدات و تجربه ها ثابت می شود. اگر کسی متوقف شود ازدهام ماشین ها در دو سوی پل بیشتر می شود و این امر بازی را پیچیده تر می کند. در این حال، گذشته یکی دو نفر مشکل را در مقیاس اجتماعی حل نمی کند بخشی از داستان خلقیات ما نمونه ای از این بازی است. گزینه زرنگی افراد و اینکه به فکر خود باشند و راضی باشند، قیصریه آتش بگیرد تا بتوانند دستمالی به دست آورند، همان می شود که اکنون در بسیاری از کلافهای پیچیده اجتماعی خود شاهدیم. نمونه روزمره آن، خود را در رفتار ترافیکی ما نشان می‌دهد رانندگانی می‌خواهند هر طور شده سریعتر از چهار راه عبور کنند و به فکر آن خود جمعی نیستند در همین مثال ترافیک گزینه‌ی تنش و تعارض با مشاجرات، بوق زدنها، از ماشین پیاده شدن و دست به یقه شدن‌ها تصادمات و مانند آن خود را نشان می‌دهد گزینه همکاری ناکارمت هم شهروندان سواره و پیاده وظیفه شناسی هستند که با حیرت و تأصف شاهد رفتارهای همشهریان خود هستند و می‌خواهند گره فروبسته زرنگی ها و تعارضات دیگران را باز کنند ولی نمی توانند. بازی همکنشی میان شخصی، خلقیات و تحلیل رفتار متقابل تامس هریس همکنشی میان شخصی را مبتنی بر روانشناسی تحلیل رفتار متقابل ایلیک برن ارائه کرده است. یک شخصیت بالغ در رفتار با دیگران فرض را بر این می گذارد که من خوبم و تو نیز خوبی. او هم همانطور که می با گذشته خود به طرز فعال و خود آگاهانه کنار بیاید گذشته دیگران را نیز می پذیرد. ممکن است کسی به دلیل تاریخچه بدنی یا فیزیولوژیک یا محیط اولیه رشد خود از قبیل عوامل خانوادگی، اجتماعی و مانند آن پیوسته در معرض عصبانیت باشد و ضمن آگاهی به این موضوع بکوشد در مواجهه با امور و روابط با دیگران آرامش خود را حفظ کند و درست به همین دلیل میفهمد که چرا این یا آن دیگری چنین و چنان رفتار میکنند آنها نیز به نوعی تحت تأثیر تاریخچه زندگی خیش هستند پس چه بهتر که افراد گذشته یکدیگر را بپذیرند و در رفتارهای متقابل به خود و دیگری یاری رسانند تا وضع را بهتر کنند فرهنگ تساهل، رواداری، کسرتگرایی و دیگرپذیری از چنین رفتار متقابلی مشروب می شود و روابط سلحامیز و دموکراتیکی را فراهم می آورد. اما اگر گزینه من خوبم در میان نباشد، انواع گزینههای منفی به سراغمان خواهد آمد. چنانچه یک طرف خودشیفته و دیگر ستیز باشد، رفتارش بر این باور مبتنی خواهد بود که من خوبم و تو بد و دیگران را در همه جا مقصر می داند. این نوع رفتار متقابل به خودمداری، ضعیف کشی و فرهنگ استبداد می انجامد. در حالت سوم عزت نفس خود را از دست می دهد و با این اعتقاد رفتار می کند که من بدم و تو خوب چنین تصویر ذهنی منفی از خود فرد را به انواع رفتار نامطلوب سوق خواهد داد و متناظر جامع شناختی آن فرهنگ قیمومیتگرایی، گرایی، عفول هویت و استقلال فردی، طولیت پذیری و سقارت اجتماعی است. سرانجام در صورتی که پارانویای ی تعمیم ای حتی نسبت به خود داشته باشد، فرزش در هر رفتاری این است که من بدم و تو نیز بدی و این منشه پوچی مکتزلی است که در حالت فعال شده آن انسان ها گرگ یکدیگر می شوند و دیگر از چنگال لویاتان هابز نیز کاری بر نمیآید. اکنون اگر متقابلاً طرف دیگر نیز هر یک از این حالات را داشته باشد، های پیچیدهتری پیش میآید.